ارز سلام و ادب و احترام خدمت دوستان جان و یاران همراه فرید حامد هستم و با قسمت دیگری از داستانهای شیرین شاهنامه فردوسی در خدمت شما عزیزان هستم امشب اولین بخش از داستان کیخسرو فرزند سیاوش و پادشاه استورهای ایران رو با هم شروع میکنیم در برنامه گذشته به اونجا رسیدیم که با میانجیگری پیران وزیر خردمند افرا سیاب فرنگیس از مرگ نجات پیدا کرد و به همراه پیران به سرزمین خوتن رفت. در اونجا پیران فرنگیس رو به همسرش گلشهر سپرد و سفارش کرد که به خوبی از اون پرستاری کن چون که فرنگیس باردار و فرزند سیاوش رو در شکم داره. گلشهر هم پذیرفت و مثل مادری مهربون از فرنگیس پذیرایی کرد چند وقتی از اقامت فرنگیس نزد پیران و گلشهر میگذره که یک شب پیران در خواب سیاوش رو میبینه که با شمشیری و شمی در دست به پیران میگه بلند شو الان که وقت خواب نیست الان موقع جشن زاده شدن کیخوسرو منه پیران سراسیمه از خواب بیدار میشه و به گلشهر میگه سری خودتو به فرنگیس برسون که من همچین خوابی دیدم گلشهرم فوراً به سراغ فرنگیس میره و میبینه که فرزند سیاوش به دنیا اومده دوباره نزد پیران برمیگرده و میگه بیا و ببین که فرزندی به دنیا اومده پسری که فقط و فقط سزاوار تاج و تخته از همین الان معلومه که پهلوونی بی میشه پیران به همراه گلشهر مجددن به دیدار فرانگیس و نوزادش میره و با دیدن چهره زیبا و پسر بچه نوزاد یاد سیاوش میفته و اشک از چشمش جاری میشه و توی دلش افراسیاب رو نفرین میکنه روز بعد دوباره پیران به دیدانه فرنگیس میره و به اون شادباش میگه و اضافه میکنه که بیشک این پسر روزی مردی بزرگ میشه و در خواب دیدم که از نژاد تور و که قباد پسری به دنیا میاد که جهان رو پر از عدل و داد میکنه قالا دخترم هرچه چی که بوده دیگه گذشته قم و افسوس ای نداره و من هر کاری که بتونم میکنم تا به فرزند تو از جانب افراسیاب گزندی نرسه برای همین اون نباید تو شهر بمونه اونو به نزد شبانان در کوهستان میفرستم چرا که این کودک نباید از گذشته خودش و اونچه که بر سر پدرش اومده خبری داشته باشه و فعلا هم صلاح نیست افراسیاب از وجود این پسر با خبر بشه پیران یکی از شبانانی که در کوهستان زندگی میکرد رو احضار میکنه و درباره اون کودک با اون صحبت میکنه و بهش میگه که باید از این پسر مثل چشمهات مراقبت کنی بعد هم پول و هدایای فراوانی به شبان میده و دایه ای رو هم همراه کودک راهی کوهستان میکنه ماها و سالها در حال سپری شدن بودند که ای خسرو در دل طبیعت در حال رشد کردن و بزرگ شدن. اما هرچی بزرگتر میشه ویژگی های شخصیتیش نمود بیشتری پیدا میکنه. در هفت سالگی از چوب کمون میسازه و با روده گوسفند زه کمون را درست میکنه و با تیرهایی که خودش ساخته بود در دشت و صحرا به شکار میره. توی ده سالگی با همون تیر و کمون خود ساخته به شکار خرس و گراز هم میره و اینقدر این کار رو تکرار میکنه که شبان نزد پیران میاد و میگه این بچه ما رو کلافه کرده اول میرفت سراغ شکار آهو و گوزن حالا دیگه به شیر و پلنگ هم رحم نمیکنه من میترسم این شجاعت و بیباکی کار دست این بچه بده پیران که حرفای شبان رو میشنوه میخنده و پیش خودش میگه نژاد و هنر هیچ وقت پنهون نمیمونه. پس سوار اسبش میشه و به کوهستان میره تا کیخسرو رو ببینه. وقتی میرسه کیخسرو رو سخت در آغوش میگیره و خدا رو سپاس میگه. پسر بچه از همه جا بی خبر به پیران میگه درود بر تو که با این بزرگی و مقامی که داری چوپان زاده ای رو به این گرمی مورد محبت خودت قرار میدی و در این کار هیچی ای با آری نمیبینی بدو گفت که یادگار مهان پسندیده و ناسپارده جهان که تاوجه سر شهری آراندوی که گوید که پور شبانان توی پیران به که خسرو میگه که عزیز من تو تاج و چشم و چراغ همه شهریارانی کی گفته که تو چوبانزاده ای؟ بعد هم دست دور میده تا لباس مناسب و اسب شایسته ای برای کیخوس رو بیارن و تصمیم میگیره که از اون به بعد کیخوس رو پیش خودش باشه و اون رو جوری که باید تربیت کنه مدتی از اومدن کیخوس رو به نزد پیران گذشته بود که یک شب افراسیاب پیران رو احضار کرد و گفت از بودن این پسر احساس چندان خوبی ندارم اگر اونطور که تو میگی کیخوس رو با چوپانا بزرگ شده و چیزی از گذشته نمیدونه مشکلی نیست ولی اگه بخواد به راه پدرش بره باید بدونی که سزاش اینه که اون هم مثل پدرش کشته بشه پیرانم به افراسیا پاسخ میده که تو خیالت از بابت این بچه راحت باشه اون کند تر از این حرفاست بعد هم از افراسیاب میخواد که سوگند بخوره که به اون بچه آسیبی نمیزنه و افراسیاب هم قبول میکنه توی اون دور زمونه سوگند حتی برای آدم پلیدی مثل افراسیاب بسیار حرمت داشته و پیمان شکنی گناهی بزرگ و ننگ به حساب میومده مخصوصا برای یک پادشاه خلاصه پیران به کاخ خودش برمیگرده و به کیخسرو میگه قراره با شاه توران دیدار کنی ازد انتظار دارم تا میتونی خودتو به خنگی بزنی و در جواب سوالات افراسیاب پرت و پلا جواب بدی وگرنه ممکن اتفاقات بدی برات پیش بیاد روز بعد پیران لباس و کلاه و کمربند فاخری بر تن کیخسرو میپوشونه و به اتفاق به دربار شاه توران میرن افراسیاب با دیدن ظاهر اندام که از شرم و خجالت خیلی سهرق میشه ولی به روی خودش نمیاره افراسیاب چند تا سآل از پسر جوون میپرسه و اون هم کاملا ربط و پرت و پلا جواب میده تا جایی که افراسیاب به پیران میگه این پسر از مو خوازاده. من از سر میپرسم اون از پا جواب میده معلومه که چیزی از بد و خوب نمیدونه و نمیتونه برای ما خطری به حساب بیاد بدو گفت کین دل ندارد به جای ز سر پرسمش پاسخ خارد ز پای نیاید همانا بد و نیک نه اویه بود مردم کین جوی و در ادامه میگه این جوون رو به سیاوش کرد نزد مادرش بفرست و به یه مقدارم اسب و پول و طلا و هدایا بهش بده. پیران نفس راحتی میکشه و از دربار افراسیاب خارج میشه و خیلی زود با روبنه سفر کیخسرو و هدایای افراسیاب رو آماده میکنه و اون رو به همراه مادرش فرنگیز به سیاوش کرد همون شهری که پدرش ساخته بود میفرسته. البته بعد از مرگ سیاوش دیگه اون شهر صفا و تراوت قبل رو نداشت ولی وقتی مردم از اومدن فرنگیس و فرزند سیاوش با خبر میشن به استقبالشون میان و با دیدن کیخوسرو، اشک از چشم همه روان میشه و داغ از دست دادن سیاوش در دل مردم شهر تازه میشه اونا رو به گرمی پذیرا میشن و فرنگیس و کیخوس رو در کاخ سیاوش در شهر سیاوش گرد ساکن میشن خب حالا یه سری بزنیم به ایران رو ببینیم باز به خبر کشته شدن سیاوش در ایران زمین چطور بوده وقتی که پیکی به دربار کاووس شاه میاد و شهر میده که چطور نا مردانه سیاوش پاک نژاد و دلیل رو کشتن کاووس فریادی از درد میکشه و تاج شاهی رو به زمین میکوبه و جامعه برتن میداره خودش رو از شدت زاری اندوه به خاک میندازه و تمام سران سپاه و نامداران ایران مثل توس، گودرز و گیو و سایر پهلوانان و سرداران سپاه ایران لباس ازا میپوشن و خلاصه با پخش شدن این خبر شوم تمام ایران در ماتم و اندوه سوگ سیاوش فرو اما در بین همه این سران و پهلوانان عکس العمل رستم خیلی متفاوت بود در ابتدا رستم و زال هم از شنیدن این خبر دردناک جام برتن دریدند و خاک بر سر ریختند و تمام زابلستان یک هفته در سوگ و ماتم فرو رفت روزشتم رستم به همراه سپاهیانش با دلی پر درد و سری پر از خشم و کینه راهی پایتخت ایران میشه در داستان سیاوش گفتیم که کاووز سیاوش رو وقتی تفلی خورد سال بود به رستم سپرد تا پرورش و تربیتش رو به عهده بگیره و رستم که غم از دست دادن فرزندش سهراب براش بسیار سخت بود سیاوش رو مثل یک فرزند پذیرفت و همه ی آداب و فنون جنگ و حادشاهی و بزرگی رو به اون یاد داد به همین خاطر رابطه‌ی سیاوش و رستم بیشتر رابطه‌ی پدر و فرزندی بود وقتی رستم به دربار کاووس رسید به رسم عذا لباس بر درید و فریاد کنان سوگند خورد که تا انتقام خون سیاوش را از تورانیان نگیره لباس رزم را از تنش در نیاره بعد هم با پرخاش به کاووس گفت که خوی بد و اون رفتار ناشایسته تو موجب مرگ سیاوش شد و اگر تو دروغ ها و دسیسه های سودا رو باور نکرده بودی این اتفاقات نمی افتاد که خودش هم سخت غمگین بود و میدونست که حق با رستمه هیچ جوابی نداد رستم که در اوج خشم بود به سراغ سودابه رفت و با خنجر اون زن مکار رو به قتل رسود این رو گفتیم تا اینکه در برنامه بعدی به ادامه داستان که و نحوه بازگشتش به ایران زمین و اتفاقاتی که بعد از اون میفته به پردازی. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت پرده باشید و طبق معمول ازتون خواهش میکنم که ما رو با پیشنهادات انتقادات و نظراتتون در بهتر شدن این سری برنامه ها یاری کنید پس تا برنامه دیگر و داستانی دیگر از شاهنامه حکیم توس فردوسی بزرگ همه شما را به خدا می مهربان با روز روزگارتون به کام و به